سرکا خام کریمی راد عزیز سلام امروز که شما این ویس رو بوشت میدین فکر می‌کنم یه چیزی پلوه هش یا هفت سال از حضورتون در نوی نالماس میگذره حضورتون به واسطه نمایشگاه شیشه سال نرده هفت در نوین نالماس به عنوان کمک اما امروز یک فروشنده قوی متحد و مسئولیت پذیر به تمام معنا انشالله که من و مجموعه نوین الماس قطدان زحماتتون بوده باشه قطعا وزنهی مست شما در نوین الماس در واحد چسب و در واحد های دیگه نظراتتون که همج دو جلسات برای شخص بنده باعث افتخار بوده بسیار کمک کرده به چرخیدن چرخهای های نوین الماس انشالله که افتخار همکاری و همراهی با شما تا سالهای سال برای بنده و کل مجموعه نوین الماس وجود داشته باشه انشاالله که در زندگی شخصیتون در وهله آبل و در وهله دوم در زندگی کاریتون هر روز موفق تر است امروز باشیم براتون بهترین روزوها رو دارم